فصل بیستم پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی را برای تاکستان خود اجیر کند. و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند آنان را به سر کار فرستاد. ساعت نه صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند به آنها گفت بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد و آنها هم رفتند در وقت ظهر و همچنین ساعت سه بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل ادعی را عجیر نمود او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید و با آنان گفت چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید آنها جواب دادن چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت بررید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد صاحب تاکستان به مباشر خود گفت کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدن شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدن. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرن، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند، شکایت به صاحب تاکستان گفتند، این کسانی که آخر همه آمدن فقط یک ساعت کار کردن و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ایم. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت ای رفیق من که به تو ظلمی نکردم. مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تموز بدهم، آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. وقتی عیسی به طرف اورشلیم میرفت، در راه دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت اکنون ما به اورشلیم میرویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تانها او را استهزان نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد آنگاه مادر پسران زبدعی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تزین کرد و تغازان نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید چه می گفت قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند. عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت شما نمیدانید که چه میخواهید؟ آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟ آنها جواب دادند: بله می توانیم. ایسا با آنان گفت، درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلا برایشان آماده کرده است. وقتی ده شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدن، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خانده فرمود، شما می دانید که در این دنیا حکرانان بر زیر دستان خود آقایی می و بزرگانشان به آنان زور می گوین. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد، باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود، باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او می رف. در کنار راه، دو نفر کور نشسته بودن و چون نشنیدن که عیسی از آنجا می فریاد زده گفتند: ای آقا ای پسر داوود بر ما رحم کن مردم آنان را سرزنش کرده و با آنها می که ساکت شوند. اما اون دو نفر بیشتر فریاد کرده می ای آقا ای پسر داوود به ما رحم کن عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید چه میخواهید برایتان انجام دهم آنها گفتند ای آقا ما میخواهیم که چشمان ما باز شوند عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفت.